سلام هستی بخش بود و جانی. سلام به شما فرهنگ دوستان شب خوبی رو براتون آرزو کنیم ادبیات شفایی ایران زمین شاخهایی متنوعی داره که بررسی هر یک از اونها ژرفا و عمق فرهنگی مردمان کشورمون رو به تصویر می‌کشه. و ما افثانه مرد لجباز رو براتون نرک میکنم که برگرفته از کتاب افسانه‌ها ها نوشته مهدی صبحی جلد اوله امیدوارم که از شنیدن این افثانه ایرانی لذت ببرید روزگاران پیش زمانی که بودند و ما نبودیم زن و شوهری زندگی میکردند زن ضبر و زرنگ بود و زحمتکش اما مرد بسیار تنبل بود و دائم در خواب زن همیشه بر سر تنبلی و خوابیدن بیش از حد شوهرش با اون بحث و جدل میکرد در یکی از همین روزها زن طاقتش تاق شد و بر سر شوهرش فریاد کشید و گفت آخه مرد تو تا میخوای یه گوشت دراز بکشی و چرت بزنی همه کارا رو من باید انجام بدم پس تو تو این خونه چی ای ها؟ مرد در حالی که به بالش بزرگ تکیه داده بود با تنبلی به خودش حرکتی داد و گفت چه خبرته زن چرا سر سرا صدا میکنی؟ آدم نمیتونه این خونه یه دقیقم سرشو زمین بذاره و یه چرتی بزنه زن با شنیدن این حرف از کوره در رفت و گفت چی؟ آدم نمیتونه یه دقیقه بخوابه؟ حضرت عالی یه دقیقم بیدار نیستی اون وقت؟ در این لحظه صدای گوسالشون از توی طویله به گوش رسید مرد گفت زن ببینی این حیوان زبون بست چشه لابد تشنه است زن که در حال جارو کردن اتاق بود با غضب نگاهی به مرد انداخت و گفت مگه نمیبینی دستم بنده پشو به گوسال آب بده مرد دندر ری کرد و گفت آه، آه، آه، چرا من من خستم زن با عصبانیت گفت مثل اینکه یادت رفته این گوساله ارسیگه باباته پس خودت هم باید بهش آب بدی مرد جستی گرفت و گفت ولی تو هم از شیرش استفاده می کنی زن با ناراحتی گفت باشه من من از فردانه گه لب به شیر این گوساله نمیزنم دوباره صدای گوساله توی فضای حیات پیچید مرد گفت زن اینقدر لجبازی نکن محض رضای خدا هم که شده یه سری برو تو طبیله ببین این حیوان چشه زن با بی اعتنایی شونه بالا این و گفت من نمیرم گوساله مال توه خودت هم باید بهش برسی همین مرد که دیگه خواب از سرش پریده بود با قاطع یک جواب داد باشه حالا که اینطور شد بذار منم خیال تو راحت کنم من صد سال سیاهم این کارو نمیکنم حالا میبینی و این بگو مگوها و لچ بازیها ساعت ها طول کشی تا اینکه زن فکری به خاطرش رسید و گفت اصلا میشه بهتر یه قراری بذاریم این دفعه من بگو سالاب میدم ولی از فردا صبح هر کسی زودتر لب به هفت زدم واکر اون باید به آب بده در چیه؟ مرد سری تکون داد و خواب بر پلکاش سنگینی. رد صبح زود زن از خواب بیدار شد و مثل همیشه مشغول انجام دادن کارهای خونه شد ولی هیچ حرفی به زبون نیاورد. چادرش رو سر کرد و به خونه همسایه رفت و با زن همسایه شروع به گپ زدن کرد. ساعتی بعد مرد از خواب بیدار شد و زنشون ندید. خواست اون صدا بزنه ولی یادش اومد که نباید حرف بزنه. به همین علت گوشهی نشست و به در و دیوار نگاه کرد ساعتی که گذشت و مرد سر رفت پا و چارپایهی برداشت و دم در خونه رفت و همونجا نشست در این لحظه مرد گدایی اومد و به مرد نزدیک شد و گفت ای مرد میشه یتیک که نون به من بدی خیلی گرستمه و با نگاههای میزش منتظر جواب مرد موند ولی مرد لجواز از جاش تکون نخورد و هیچ حرفی به زبون نیاورد مرد گدا که فکر کرد مرد متوجه حرفش نشده دوباره با لحن ضعیفی گفت یه تیکه نون میخواستم نون خیلی گرستم و باز مرد کلامی به زبون نیورد و بر رو بر به مرد گدا نگاه کرد مرد گدا با خودش گفت آه مرد بیچاره لابد کره چیزی نمیشنوه مرد گدا دوباره گفت آهای با تو هم صداو میشنوی؟ مرد که فکر میکرد زنش این مرد گدا رو فرستاده تا بلکه اونو به حرف زدن وادار کنه همچنان سکوت کرد و چیزی نگفت ولی توی دلش گفت زن لچ باز فکر کرده میتونه منو وادار به حرف زدن کنه و باز بر و بر به مرد گدا نگاه کرد مرد گدا که این اوزار رو دید وارد خونه مرد شد و توبرش رو پر از نون و پنیر کرد و از خونه بیرون اومد مرد تمام حرکات مرد گدا رو زیر نظر داشت ولی از خودش هیچ واکرشی نشون نداد چون میترسید زنش از راه برسه و اونو در حال صحبت کردن ببینه اون وقت مجبور هر روز به گوساله آب بده مرد دون شدن مرد گدا رو با عصبانیت و ناراحتی نظاره کرد مرد همونطوری که روی چارپایه دم خونه نشسته بود مرد سلمونی با کیف سیاهش از راه رسید چشمش به مرد که افتاد به اون نزدیک شد و ازش پرسید میخوای سر و تو اصلاح کنم؟ مرد چیزی نگفت و به کیف دستی مرد سلمونی خیره شد مرد سلمونی گفت موها تو چی؟ مرتبشون بکنم؟ مرد که باز فکر کرد زنش این مرد سلمونی رو به سراغ اون فرستاده تا به هر کلکی شده اونو به حرف زدن وادار کنه چیزی نگفت مرد سلمونی که سکوت مرد رو دید با ناراحتی گفت ببینم تو نمیتونی حرف بزنی مرد باز هم چیزی نگفت و مرد سلمونی وسایلش رو از سوی کیفه دستی خودش بیرون آورد و با خودش گفت بهتره کارمو شروع کنم اگه این مرد ناراضی بود چیزی میگفت از قدیم گفتن سکوت علامت است. و شروع کرد به تراشیدن سر و ریش مرد و در یک چشم به هم زدن نه تار مویی توی سر مرد دیده میشد و نه ریش و سبیلی توی صورتش مرد که از درون به شدت ناراحت و عصبانی بود با خودش گفت حیف که نمیتونم حرف بزنم اگر نه تلافی این کار رو سرت در میآوردم مرد سلمونی که کارش تموم شده بود با هیجان توی صورت مرد خندیده گفت <تصفيق> واقعا که توی کارم استادم استاد و بعد آینه کوچک ای کچک روبروی صورت مرد گرفت و پرسید چطوره خوشت میاد؟ مرد زیر چشمی به تصویر خودش که کج و معوج توی آینه نقش بسته بود نگاهی انداخت و از دیدن قیافی خودش به وحشت افتاد لبش بید که بر سر مرد سلمونی فریاد بکشه ولی بیاد قراری که با زنش گذاشته بود افتاد و خشم خودش خودشو فرو برد مرد سلمونی فوت محکمی به سر و گردن مرد کرد و گفت خب،, خب کار من تموم شد پشو مزدم و بده که خیلی کار دارم مرد از جاش تکون نخورد و از شدت عصبانیت گوشه ی لبشو می و مرد سلمونی این بار با صدای بلندتری گفت آی آقا با تو هم چری؟ گفتم مزدم و بده و چند لحظهی منتظر موند و وقتی بی اعتنای مرد رو دید خودش دست به کار شد و دست توی جیب لباس مرد کرد و هرچی پول توی جیب مرد بود برداشت و رفت مرد از شدت پاش و محکم به زمین کوبید و ناراحت و عصبانی قدم های تند مرد سلمانی رو تا انتهای کوچه دنبال. هنوز چند لحظه از رفتن مرد سلمونی نگذشته بود که دزدی از اون حوالی گذشت چشمش به مرد با اون قیافه خنددار که افتاد ایستاد و زد زیر خنده بعدم جلو اومد و به مرد گفت تو عجب قیافه خنددار با مزهی داری <تصفيق> و بعد در حالی که سعی میکرد جلوی خندش رو بگیره به مرد گفت بذار, بذار خودم حسابی خوش کرد کن. و دستی در کیسهی که به همراه داشت فرو برد و مقداری خرت و پرت بیرون برد و سرخاب و سفیدابی از میونه خرت و پرتا جدا کرد و شروع کرد به قرمز کردن لپای من مرد هم که فکر میکرد این مرد رو زنش برای باز کردن زبون اون به سراغش فرستاده لام تا کام حرفی نزد و چیزی نگو دوست هم با خیال راحت صورت مرد رو بذک کرد و در حالی که از خنده ریسه میرفت وارد خونه مرد شد و هرچی دم دستش بود ورداشت و از مرد فاصله گرفت و دور شد مرد توی درش به زنش گفت دیدی بازم کرخوندی اینم نتونست زبون منو واقع کنه و با حیافه پیروز مندانهی لبخند زد در این لحظه صدای گوساله از طویل بلند شد حیوان بیچاره که از تشنگی زبونش کش اومده بود با صدای ضعیفی ناله میکرد مرد با خودش گفت این زن قدر جنسی که به این حیوانم یاد داده که با سر و صدا کردن منو وادار به حرف زدن کنه و بعد شناهاشو بالا اینداخت و با خودش گفت من که تا بال جوابه هیچ کس رو ندادم پس جواب این حیوان رو هم نمیدم و گوساله رو که به طرفش میومد به سمت طویله کشمد <تصفيق> در این لحظه زن مرد وارد حیاتو خونه شد و وقتی چشمش به شوهرش با اون قیافهٔ مسخره و بزک کرده افتاد با تردید نگاهی به اطراف انداخت و توی صورت مرد خیره شد اما اون نشناخت و فکر کرد شوهرش سرش هوو آورده و با عصبانیت جلو اومد و گفت تو تو با این بزک تند و تیزت بدون چارقد اینجا چکار میکنی و بدون معطلی جارو رو برداشت و صداشو بلند کرد و گفت حالا دیگه سر من میاری ها الان نشون هر دوتا تو میدم و همین که خواست جارو رو بر سر مرد بکوبه مرد با هیجان گفت تو تو پختی تو باختی حالا هر روز باید گوساله رو آب بدی زن هاج و واج ایستاد و توی صورت مرد خیره شد بعد دو دستی زد توی سر شوهرشو هرشو گفت خاکش بر اون سرچ بکنه این چه قیافه‌ایه که برای خودت درست کردی مرد شونه رو بالا انداخت و گفت هیچی مهم نیست مهم اینه که تو باختی و باید هر روز گوساله رو آب بدی زن سری تکون داد و وارد اتاق شد و توی اتاق همه چیز به هم ریخته بود زن چیغ بلندی کشید و مرد از جا پرید و گفت چی شده زن؟ چرا جیغ میکشی؟ زن گفت بایدم جیغ بکشم دار و رو دوز برده و توی صورت شوهرش هرش زد زده گفت میشه بپرسم آقا کجا تشریف داشتن که این همه بلا به سرمون اومد؟ مرد شونه بالا این و با خون سرده گفت همونجا روی این چارپایه نشسته بوده زن با عصبانیت گفت پس چطور گذاشتی؟ دزد دار و ندارمون رو ببره و صدا در نیاد مرد گفت چون میدونستم که تو این دزد رو فرستادی که منو وادار به حرف زدن بکنه زن آه بلندی کشید و گفت من اونو نفرستادم واقعا که تو مرد لچباز و نادونی هستی تو همه چیز رو فدای لچبازی و تنبلی خودت کردی زن فکری به خاطرش رسید و فورا از شوهرش پرسید: "دوست، کی از اینجا رفت؟" مرد فکری کرد و گفت: "یه نیم ساعتی میشه." زن بتوندی از جا بلند شد. افسار گوساله رو به دستش گرفت و با قدم قدم‌های تند و بلند از خونه بیرون رفت. صدای مرد از پشت سر اونو بدرقه کرد. "آهای زن، کجا میری؟" زن جواب داد: میرم دوز و پیدا کنم بی عرضه زن وارد کوچه باریکی شد و به بچه هایی که در حال بازی کردن بودن نزدیک شد و از اونا پرسید بچه ها شما یه نفر رو ندیدین که یک کیسه روی دوشش باشه؟ بچه ها گفتن چرا چرا دیدیم اون داشت به طرف شهر میرفت زن معطل نکرد و به طرف شهر به افتاد دوست که در میون راه از فرط خستگی یه گوشهای در حال استراحت کردن بود زن رو دید رو از اون پرسید آهای ابجی کجا میری انگار خیلی عجله داری زن دوست رو شناخت و گفت درسته خیلی عجله دارم من قریبم و به شهر میرم اونجا کار مهمی دارم باید تا قبل از تاریکی هوا به اونجا برسم دوست که گوساله زن چشش رو گرفته بود با خودش گفت باید یک کلکه بزنم و این گوساله رو از چنگین زن در بیارم بعد رو کرد به زن و گفت آبجی من هم قریبم و میخوام برم شهر اگه بخوای با هم به عنوان خواهر و برادر به خونه کت خدا بریم و امشب رو مهمون جناب کت خدا باشیم زنم با خودش گفت این بهترین فرصته که وسایلمونو از چنگ این دوزد بیمو ود در بیارم و بعد به دوست جواب داد باشه برادر من حاضرم زودتر را بیفتیم زن و دوست برا افتادند و چند ساعت بعد پرسون پرسون به در خونه ی کت خدا رسیدن. کت خدا و زنش هم به گرمی اونها رو پذیرفتن. بعد از شام موقع خواب زن گفت اگه ممکنه رخت خواب من تو توی یه اتاق دیگه بندازین. آخه برادرم موقع خواب زیاد خروپفت میکنه زن کت خدا هم رخت خواب زن رو توی اتاق دیگه انداخت نیمه های شب زن از خواب بیدار شد و پاورچین پاورچین به انبار خونه کتخدا رفت و مقداری آرد برداشت و با اون خمیری تهیه کرد و توی کفشای مرد دزد و کتخدا ریخت بعد با احتیاط و بیستر و صدا کل پشتی دوز رو که تمام وسایل خونشون توی اون بود و گوساله رو برداشت و رفت صدای به هم خوردن در زن کت خدا رو از خواب بیدار کرد و با ترس و لرز شوهرش از خواب بیدار کرد و گفت پاشو پاشو مرد صدای در اومد نکنه این مهمون دزد دوز بودن کت خدا با شنیدن کلمه دوز به تندی از جا بلند شد و با خواب پرسید دوز کجا کجا دوز زن خدا گفت فکر میکنم فرار کرد کت خدا با عجله کفشاش رو پا کرد ولی پاهاش به خمیر کف کفشها چسبید و مجبور شد کفشها رو از پا در بیاره و با پاگ برهنه تا دم درگاه بره. در حیات باز بود. کتخدا برگشت و سری به اتاق مرد دوز زد و متوجه شد که مرد دوز همچنان در خواب سنگینی فرو رفته. خدا با صدای بلندی گفت ای امو! امو! پشا ببینم! با تو پاشو مرد سراسیمه از جا پرید و گفت چی شده چی شده خدا گفت خواهرت کفشای من و پر از خمیر کرد و خودش هم زد به چاک عجب خواهری مرد دوست با قیافهٔ به جانبی گفت اون عادتش وزیر چشمی نگاهی به اطراف انداخت و متوجه شد که زن کوله پشتی رو هم با خودش برده و با دست پاچگی رو کرد بکت خدا و گفت بهتره بهتره بتره, بتره منم برم نمارش میترسم کسی توی راه ازیتش کنه یا یه دزدی گوساله ساله رو از چنگش در بیاره من برم خیلی بهتره. به بعد به سراغ کفشش رفت و دید که بله زن کفش کفشهای اون رو پر از خمیر کرده خندهی کرد کرده گفت خواهرم گایی از این شوخی میکنه. و کفششو به دست گرفت و از کت خدا و زنش خداحافظی کرد و به دنبال زن برافت ایمه های راه زن نگاهی به پشت سرش انداخت و دید که مرد دوست با سرعت تموم داره به اون نزدیک میشه زن از ترس لرزید و رو کرد به گوساله و گفت میبینی هرچی میکشم از دست تو و اون شوهر لچ بازم میکشم اگه این دوست به ما برسه فاتحه هر دوتای ما خونده است خودت میدونی میخوام کاری کنی که مرد دزد به چند قدمی اونا رسید زن از ترس زبونش بند اومد افسار گوساله رو رها کرد و گوساله خیر خیره نگاهی به مرد دست انداخت و چند قدم عقب عقب رفت و یهدفه با سرعت به دوست حمله کرد و شاخهای تیزش رو توی شکم اون فرو کرد دوست فریادی از درد کشید و نقش برزمی شد زن خم شد و شاخهای گوساله رو بوسید و با هم به طرف خونشون برا به خونه که رسیدن مرد روی سکوی جلوی ایوون به انتظار زنش نشسته بود و با دیدن اونها خوشحال شد و به پیشوازشون رفت گوساله تا چشمش به مرد افتاد عقب, عقب رفت و خواست با شاخهای تیزش به طرف مرد حمله کنه که زن پیش دستی کرد و جلوی اونو گرفت و گفت نه نه صبر کن درسته که اون شوهر تنبل و بازیه. ولی در عوض آدم ساده و دلپاکیه و به شوهرش لبخند زد مرد که آثار شرمندگی توی صورتش موج میزد افسار گوساله رو گرفت و به طرف طویله رفت و از فردای اون روز مرد دست از تنبلی و لجبازی برداشت و مواظبت از گوساله رو خودش بر عهده این که براتون نهر کردم افسانه ایرانی مرد لجباز بود که امیدوارم لذت پرده باشید این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سابه بود. اجرا مهران دوستی صدابردار اچبر نیکاین و تیه کننده زهرا عبدالله زاده SONIC VILLAR پترو.